بهش میگه گاد رهبری از این در مقابل نگرش اقیانوس قرمز ما همون جوری که خدمت رو هفته گذشته عرض کردم نگرش دومی هست به نام اقیانوس آبی درسته نگرش اقیانوس آبی نگرش است که شما هم دنبال افزایش درآمد هستید و هم دنبال کاهش حزینه و در نتیجه سود سازمانت رو میتونیم تضمین بکنی به عبارت دیگه استراتژی که شما اینجا اتخاذ میکنیم تمایز و رهبری حزینه است یا تلفیق تلفیقی از تمایز و رهبری حزینه این باص که ما هفته گذشته یه نکته‌ای رو هفته پیش با شما استارت زدم، گفتم اوکی. ما میگیم درآمد بره بالا. خب؟ هزینه بیاد پایین. این جملات خیلی کامنیه که ما در بیزینس خیلی در رابطه با شنیدیم، بحث کردیم. ولی افزایش درآمد و کاهش هزینه در چه هایی در سازمان باید اتفاق بیفته؟ یعنی شما رو چه فعالیتایی در سازمان باید متمرکز بشید تا بتونی افزایش درآمد و, و در ادامه کاهش حزینه رو داشته باشید که هفته پیش خدمت شما گفتم آقای پورتر مدل ارزشی پورتر، چرخی ارزش پورتر بر نه فعالیت متمرکزه، درسته؟ باید. و به عبارتی روی این نو فعالیت سازمان ها میتونن ما بدن نه فعالیت اصلی و پشتی که همه سازمان ها باش درگیرن که 4 فعالیت فعالیت پشتیبانی بود منابع انسانی زیرساخت تکنولوژی و خرید خب و 5 فعالیت هستی بود لوجستیک رو به داخل تولید لوجستیک رو به خارج بازاریابی و خدمات پس از فروش یعنی 9 فعالیت بر اساس چرخی ارزش پورتر حالا اگر شما دنبال افزایش درآمدی به شفت یا روشی بعد این 9 فعالیت متمرکز باشی اگه دنبال کارش از این اصلی باشی یا روشی این نه فعالیت متمرکز بشید، درسته؟ باید. که من هفته پیش بحث رهبری حزینه رو بلیوچه با هم رفتیم جلو دیگه، درسته؟ هاید. بریم ماتریس این رهبری حزینه رو با دیگه با هم بکشیم میشه بگید به من ماتریس رو ماتریس؟ شما استراتژی رو ارتر بارا بودید اهداف رو یا؟ استراتژی رو پایین بذاشته میکنه این اهداف نیست فعالیتاست فعالیت است. اصلا هم خود از چه اگه مشترک مشتريباشه... <تصفح> خب، فعالیت ها درسته زیر ساخت تکنولوژی تکنولوژی. منابع, تکنولوژی منابع انسانی خرید خرید لوجستیک وید آخر درسته تولید عملیاتی عملیات تولید عملیات لوجستیکه روبه خارج خب؟ آزاریابی با آزاریابی خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش باست این این چود زیر مجموعه جنریک استراتیگی دیده چیه؟ یعنی این نقطه یعنی اصلش همون ڈیفرنشن ڈیفرنشن و کس و فروسه خب ولی اینا زیر مجموعه اون میشه اینا فعالیت های اصلی و پشتبانی یک سازمانه چاره ما میخوایم استراتژی های تجاری رو روی اینا، نه می خواد استراتژی تجاری رو در سازمان پیاده سازی کردن برای این نقطه متمرکز بشیم. می چه اینا درون سازمانه زیر ساخت تکنولوژی منابع یا درآمد ببریم بالا یا خزینه رو بیاریم. اینجوری برای این نقطه متمرکز بشیم. خب ما استراتژی پورتر استراتوژی های هم در حقیقت اینجا می استاد وقت داره اونه کلکل می کنه صداش بالاست نه در آنطاقا میبین، در که مثلا نه مشکل ندارم، نوترالایز میشه مثلا نمیتونه روابت نمیتونه، حریف نیست خب ببینید ما الان دو تا استراتیجی مدنظرمونه، درسته؟ رحبری حزینه خب و رحبری حزینه کانونی درسته؟ رحبری حزینه و رهبری هزینه کانونی درسته؟ رهبری هزینه و رهبری هزینه کانونی خب بیشتر به من تو زیر ساخت چه استراتجه نظر ما بود؟ تمایه خب ساده کردن سیستم برنامه ریزی. ساده کردن برنامه ریزی سیستم اولوان. ساده کردن برنامه ریزی سیستم ارگانیک خب دیگه تکنولوژی چی بود؟ استفاده از تجهیزات پیش رفته همین؟ استفاده از تجهیزات پیش رفته خب دیگه منابع انسانی افزایش آموزش‌های های از ازش افزایش افزایش اثر بخش دیگه کاهش استعفا و اخراج چیه چی؟ کاهش استعفا و اخراج کاهش قایش... من نگفتیم من کاهش ترنوبر به شما نگفتم؟ نم. نه استاد کاهش استعفا در سطح سازمان و اخراج کاهش استعفا یا اخراج دیگه ها؟ اینو کاهش ترنوبرم بهش میگن دیگه خرید بلی ارتباط با تهمین کنندگان من ارتباط با تهمین کنندگان نمی نوستم SRM Supplier relationship management Suppliers relationship management مدیریت ارتباط با تامین کنندگان Suppliers relationship management اوکی؟ میشه ادامه بدین؟ خرید ارزان ولی با که خرید عرضان ولی با کیفیت خب دیگه برجستی که رو به داخل نزدیک بودم به تامین کننده نزدیک بودم خب دیگه تولید, تولید. دیگه بهرهوری بالا بهرهوری بالا تولید اقتصادی تولید اقتصادی دیگه روجی که رو به خارج، کاهش هزینه های همن. کاهش هزینه هایحملرادن. خب، بازاریابی استخدام بازاریا به حرف خب؟ پس از فروش افزایش کیفیت جهت کاهش هزینه های گارنکه افزایش کیفیت جهت کاهش هزینه های چی؟ گارانتی. خب، دوستان حالا شما هم دقت بکنید، این خیلی مهمه این استراتژی هایی که من اینجا با خط بسیار بدم نوشتم نمیدونم چند تاست تا 12 دوازده تا سیزده تا 14 تا اینا استراتژی های رهبری هزینه یا رهبری حزینه کانال رهبری هزینه ما میگیم خب یا استراتژی هایی است که شما میتوانید در سازمانتون پیاده سازی کنید جهت کاهش هزینه. جات کاهش حزینه، جت اطلاعتون، خب، حالا شما که میرین فولدر رو میخونیم در این که این آمال آقایان هیت و آرلنده، یعنی استراتژی های کاهش حزینه در سازمان اگه بخواید کتب کنین یا رفرنس ببینید، میدید به آقایان هیت و آرلند خب، استراتژی رهبری از که استاندارد هم هست یعنی اگر، ببین خیلی ساده، الان ما شاید, شاید الان یه چیز یاد گرفتیم خیلی ساده رو یاد گرفتیم ما این صحبت از رهبری نظرات هز... میخوام کاش هزینه در سازمان میکنه انواب و اقسام مدیران صحبت میکنن از کاش هزینه درسته؟ کاش هزینه مخلص کلام یعنی این، همین هیچ چیز دیگه هم نیست یعنی اگر کسی خارج از این چارچوب صحبت از هزینه بکنه حالا بگم میگم خارج از این چارچوب حالا ممکنه سایر فنون برنامه رو یه جور دیگه بگم ولی به شکلی بر این باشه این چارچوب باشه وقتی ما صحبت هست کاهش هزینه در سازمان می‌کنه پس کاهش هزینه به معنی نیست چای رو کم کن نسکافه رو کم کن شیر نخور بیسکویت نخور اینو نخور اون اضافه کاری رو بزن نه کاهش هزینه یعنی دقیقاً برو این نه فعالیت در سطح سازمان متمرکز بشی بر اساس چرخ ارزش پورتر خب اوکی تا اینجا رو بحث کردیم بریم سراغ تمایوس بنا یه سوال اگر سازمان فقط از این ها استفاده کنه اینو به چی میگن رد اوشن بله استراتژی اگر فقط از اینا استفاده بکنه بهش میگن استراتژی اوکیانوس بریم سراغ دوستان توی یا پاورپوینتتون چرخه ارزش پورتر هست درسته؟ که تو چرخه ارزش پورتر تو پاورپوینت این نوع فعالیت مشخصه که بر اساس راهبری بر حزینه تو هر فعالیت چکار آور کنم به یه زبان ساده تر ترجمه کردیم نوشتیم اوکی؟ بریم تر حالا تماییز تماییز یعنی چی دوستان؟ تمایز یعنی من معنی فرق داشته باشه در رقبای دیگه حالا چطور می‌تونی معنی چیه؟ بارتری نسبت به رقبا داشته باشی. یعنی جانم، اون تفاوت‌هایی که کاملاً شاخص و مشخص باشه با رقبا دیگه. آره، یعنی فعالیت یا فعالیت‌های در سازمانت داشته باشی <تس> <Regardless> <مت> که تو رو متمایز کنه از رقیب. یا بهتر از وقیبت باشید. درسته؟ دیتاکس بکنید. اگه بخوایم برم سراغ تمایز. تمایز. در رابطه با زیر ساخت. در رابطه با زیر ساخت. ما تمایز و تمایز به حواشی قانونی با هم می‌دونید؟ تمایز و تمایز قانونی رو با هم می‌دونید؟ <تصفيق> ببینید فرق تمایز با تمیز چیه؟ تو فرایند شما که تفاوتی نمیکنه ولی فرق که داره این برای مشتریان خاصه بر همه مشتریان چ یا رهبری هزینه و رهبری هزینه کانونی رهبری هزینه برای کل مشتریانه یه موقع تو استراتژی رهبری هزینه هست همه مشتریان استراتژی رهبری هزینه داری یه موقع استراتژی رهبری هزینه کانونه، فقط برای گونه خاصی از مشتریانی که شما استراتژی رهبری هزینه رو بهید. دروسته؟ بله. خب. به سراغ تمایز تمایز کانونی. اولین برنامه سیستم پیشرفته CRM <تصفح> یه زمانی هست شما می از سیستم پیشرفته سی استفاده می کنید ریلیشنشیب منیجمنت از یک نرم افضار پیشرفته سیستم پیشرفته سی که بیایید دقیقا نیازها و خواسته های مشتریانت متوجه بشی و بر اساس نیازها و خواسته های مشتریانت بیایید محصولاتت رو کنید مثل شرکت دیل میاد از یک وبسایت خیلیی پیشرفت استفاده میکنه. متوجید است. که مشتریان لپ تای رو که میخوا خودشون بر تو وبسایت میدونی که حالا از دل بخواد خریداری کنید خودت میتونید داخل وبسایت لپ تاپ و montaاج بکنید. به این قططر میخواد اینقططر رو میخواد این رنگ رو میخوان اینجوری میخوان اینجوری میخواد برات montaاج میکنه به حالت سبودی به نشون میده قیمت به میده پرداخت میکن برات تمبر میکنه میاد. اینو م بین یک سیستم پیشرفته CRM. و به نوعی میتونه سازمان متمایز بکنه یا تو ایران فکر کنم سیاره و اگه مثال بزنه یه شرکت خوب ارژی رو مثال بزنه حالا من مثال خیلی شکلت هم اما و اصلا سیستم سیاره میتونن داشته باشه نکته بعدی تولیدات با کیفیت یعنی سازمان ها میان متمرکز میشن روی کیفیت فوق‌العاده بالای محصولاتشون. یعنی اصی چی نمیزنه میدونی چی دارم میگم؟ شما مثلا میرید رستوران X، میبینید آقا قیمت غذاش چه میدونم دو برابر سه برابر جای دیگه‌ست. چرا؟ چون داره از بهترین جنس استفاده میکنه پولش هم داره از مشتری میگیره. تولیدات با کیفیت. بهترین چاله کبابی تو تهران کجاست؟ آل نه. اختری. کجا میشه؟ این فاین که معرفان همی آل بورس نایبه نایب خیلی خوبه. من بستگی به شباش از داری از شباش. داری. دار شباش. شباش. چند دادن آل بورس بورسی؟ می از او ششده ششده که باید اینه کیشکی کیشکی کیشکی اینا اینا نمونه های استراتژیا ها ما تو رستوران داریم صحبت یعنی کیفیت یا یعنی مثلا شما وقتی که میبینید ماشین لکسوس ها خب قیمت بالایی داره 300 میلیون 400 میلیون 500 میلیون متوجه ای. و یک خطره فوق العاده با کیفیت داره میده بیرون که تمام موارد رو رعایت کرده اینو ما بهش یه تولید با کیفیت که مسلما تمایز درش دیده شده تمایز داره نکته بعدی بریم تو قسمت مدیریت منابع انسانی من شد استفاده پیشرفت سیستم پیشرفته سیاره تولیدات با کیفیت بریم تو قسمت تکنولوژی یک ببین سازمان هایی که استراتژیشون تمایزه تو قسمت تکنولوژی میان چیکار میکنن راه اندازی واحد تحقیق آره، تحقیق و توسعه یعنی یک واحد را اندازه میکنن به نام تحقیق و توسعه و رو این واحد دارن هزینه میکنن متوجه هسته که حالا یا بیاد نیازهای مشتر متوجه بشه یا نیازهای بازار متوجه بشن و بر اساس این قضایه بیاد تولیداتشون رو بهبود ببخشن کفیت بدن، بهبود مستمر داشته باشن خب؟ پس رو اندوزی بازه و توسعه و هزینه در رابطه با تحقیق یکی از حرکت‌های بسیار بسیار مهم توزیع تکنولوژیه که کاریه که استراتژیشش تمامی زیر روابط تحقیق توصیفشون متمرکز میشه در رابطه با تحقیق. آره هزینه در رابطه با تحقیق. در رابطه با منابع انسانی. در آمت ما منابعه محیطی آرام خوب یا تراهی محیط کار به گونه ای که خلاقیت پرسنل افزایش پیدا بکند این خیلی مهمه یعنی میای شما رو محیط فیزیکی کارتون حزینه میکنید سرماهی میکنید هزینه میکنید میکنی. میکنی. خیلی مهمه سامای گذاری میکنید که پرسنل در یک محیط فوق شیک متوجه هستید و آرام توانند خلاقیت خودشونو افزایش بشدن یا خلاقانه کار بکنن پس ببینید محیطی محیط کار محیط کار به گونه باشد خب به گونه باشد که پرسنل خلاقیت داشته باشند درست که پرسنل خلاقیت داشته باشند یک اولین موردی که بعد تو بحث منابع انسانی خب یعنی ما خیلی به مدیریت کار توجه بکنیم اگه استراتژی تمایز و دروازه منابع انسانی می خوای حرکت کنیم دو نکته دو خیلی جالب نوشته. نوشته some extensive use of subjective rather than objective performance measures. نگارش سابجکتیو داشته باشید تا نگارش آبجکتیو. یعنی چی؟ خیلی ساده من بگم در حوزه منابع انسانی اگر استراتژی تمایز داری میری جلو، خب باید منابع انسانی رو سهم بکنی در سود شرکت. خیلی ساده سعی بکنه، حالا من البته نه توی تو این کلاس گفتم یه کلاس دیگه بود خیلی هم تاکید کردم روی این بحثای زیادی توزیع انگیزش میشه خب ولی واقعا بهترین راه انگیزش برای پرسنل یه حقوق متعادل ولی درگیر کردن پرسنل در رابطه با پرفورمنس سازمانه و سخت هم نبرد داشته باشه این؟ جان سود شرکت همه در مطقه با سود شرکت یا درآمد یا سود حالا ما به حالان سود بده نظرمونه دیگه که ساده، از ای تا زبت همه، من خواهشی که دارم، ما که تو سازمانمون نتونستیم اجرا بکنیم خب؟ آره، ما فرق نبودیم ولی شما اگر میتونید تو سازمانتون اجرا کنید، این کار انجام بدید این مدلیه که من بهش رسیدم فرمول واقعا ساده اینجایت هنگیزه دادم به پرس درصدی از سود خالص شرکت به پرسونلتون بده حالا میتونه بر اساس ها و مشاغلشون پوزیشن‌هاشون متفاوت باشه خب و سخفم نداشته باشه و واقعا پرداخت بشه اینو بهش میگن نگرش سابجکتیو پس یعنی علی بهشون سهام بدیم کار رو سهام نه نه نه اشتباه نکن سهام نباید بدید سهام نه نه نه اون تو بهگی اصل کار نمیکنه. میکنه نه واسه سهام نه من میگم درصدی از سود خالص شرکت در قالب پاداش سالانه، شش ماهیه بار، سه ماهیه بار، ماهانه، بستگی داره به پرسنل پرداخت بکنید و هیچ انبالی منرگوجو هم سقف نداشته سقف نداشته باشه یه واقعیت یا ها؟ و ببین چجوری این رو برات کار میکنه حتی در ایران که من رسیدن به این قضی خوب جواب میده عالیه شما رسیدی؟ نه، میشه صحیح پاداشه که قابل لمس باشه آفرین صحام قابل لمس نیست، به درد بچه ها میکاره خب؟ مثل صحام کیران خودرو رو نه, نه، مثلا اینا به اینا نه ها، به بالاتریا قابل لمس اینه که آخر ما، یا آخر سال ببینه تو بشه پوله من. بره خرج بکنه <تصفيق> نه مثلا قابل لمس یعنی این که ما الان متاسفانه میگیم این مقدار مشکل هم تو سیستم داریم ما پاداش داریم ببینید من اتفاقا همین چند روز پیش گزارش از مالی گرفتم خب سود زیان سالو بستن ما سال گذشته بوده 400 میلیون پاداش داده به کل سازمان خب حالا رحم رحم خب 400 میلیون تو خزینه کردی از اون وقت اون راندمانی که دنبالش بودی رو حالا به هر دلیلی بهش نرسیدی میدونی چی دارم بهت میگم بهش نرسیدی چرا به خاطر اینکه من حالا پهیلایک ما انجام دادیم یاره مثلا ما 200 تومن میره تو جیبش 200 تومن مالا لنس نمیکنه مدیر مثلا به خاطر سخفی که این پاداش داره به خاطر سخفی که ما گذاشیم ما سخت گذاشتیم خب مثلا این 30 ظرف یه سال مدیر تولید مثلا 8 میلیون تومن گرفت 10 میلیون تا 8 میلیون کاری نمیتونه انجام بده باشه حسش نمیکنه ولی واقعا اگر اینا می‌دونی، جنب بشه، مثلا مثال می‌زنم، می‌تونه جن بشه آخر سال به یه مبلغ خیلی بلدی بهشون داده بشه سخف نداشته باشه که پاداش لمس بکنن، بحشت دار راندمان میذاره. ولی از اون تربیه حقوقش متعادل بکن بگو اصلا تو حقوقت از پاداشه چیزی که ما رسیدیم، من یه اشتواهی باز منجری که کردم، الان مثلا کارگر داخل خط، ما تلاشکار با اضافه کارش داره نزدیک دو دو خورده میگیره. کجا توی ه بابا این دو دو خورده دیگه کافیشه زندگیش دیگه میبنده باین اونجان مردن اینافم باشه زیادن باشه دیگه نمیان تلاش بکنه برای پاداش که میدونی چی دا به میگن؟ شرکت های بید. حالا در ایران میان چیکار میکارن؟ میان پشلیستی میدن؟ میان حقوق پایه میدن پایه وزارت کار خب؟ بقیه درامدشو، حالا برای بعضی از مدیران همین حق جزد در نظر میگیرند خب به مدیر نمی که مای شیشتر تومن رو که توی قراردادش میمیستی شیشتر، بقیه همه پشتیستی میده، حالا دومن و سر ملنم پشتیستی میده بهش بقیه رو منو کنی به پاداشش حالا قصه پاداش هم میتونی بذاری وری، میتونی بذاری، نمیدونم، حق جز، هر اسم، کارانه، هرچی و واقعا یه دفعه شما مثلا یه مدیر بازاریابی از یه شرکت 50 میلیون شست میلیون میگیره شرکت سود میبره نفرم سود میبره اینو بهش میگن تمایز اینو بهش میگن تمایز در منابع انسانی ببینم من اگه خیلی ساده بخوام بنویسم حقوق پرداخت حقوق و پاداش پرداخت حقوق و پاداش یا پاداش بر اساس راندمان پاداش بر اساس راندمانی خیلی مهمه پاداش رو بیاید بر اساس راندمان پرداخت بکنید تو خرید تو خرید ما تو رهبری حزینه خرید چی گفتیم؟ گفتیم خرید ارزان ولی با کیفیت. خو؟ خب اینجا می‌نویسیم بهترین خرید با درترین کیفیت. دوست با برترین کیفیت. اگر در بینی خیلی ساده است سا تو راهبری از این میگیم ما تدارک بود برو خرید کن. حالا کیفیتش قابل قبول باشه. نرو اشغال بفر. نمیخواد در چیز لاک خریداری کنی. کیفیت قابل قبول خریداری کن. ولی در استراتژی تمایز ما میگیم میره خرید میکنی لاک هم خریداری میکنی بهترین کیفیت هم خریداری میکنه. این میشه استراتژی تمایز. مثلا ما متریال خود ما متریال وارد می‌کنی متریال حالا متال دیگه فلزی استیل خب از چین میتونیم وارد کنیم از هل میتونیم وارد کنیم از که آلمان و ایتالیا میتونیم وارد بکنیم قیمتا فوق العاده متفاوته برای بعضی از پروژامون ما از چین وارد میکنیم خب برای بعضی از پروژه‌ها رو بر اساس توافقاتی که ما مشتری داریم از صندیک آلمان وارد می‌کنیم شوف خب کاملا قیمتمون فرق لوجستیک رو به داخل لوجستیک رو به داخل <تصفح> لوجستیک رو به استفاده از بهترین سیستم حمل و نه جائته که کیفیت محصولات بتونی حفظ بکنید خوب در رابطه با تولید استفاده از بهترین تجهیزات جائته افزایش کیفیت خب در رابطه با تولید میای از بهترین تجهیزات استفاده میکنی که کیفیت محصول تا حد امکان افزایش پیدا بکنه در رابطه با لجستیک رو به خارج حمل و نقل با برنامه جهت تحویل به موقع محصولات به مشتریان هملا نقل با برنامه جهت تحویل به موقع محصولات به مشتریان یعنی اینجا دیگه ما زیاد توی بقول معروف ا فضايه هزینه همون هدفمون تحویل به موقع محصولات به مشتریانه شاید اینجا ما بیان میدونی خیلی مدیریت خزینه بکنیم یه هفتم دیرتر تحویل بشه به مشتری ولی كاش هزینه مد نظر ما باشه ولی توی این حالت پولش از مشتری میگیره تحویل به موقع به مشتری میده درسته تووزه بازاریابی توزه بازاریابی، استفاده ما تو رحبه ی از اینه میکردیم؟ استخدام بازاریاب هرفه به تعداد کم دیگه، درسته؟ اینجا استفاده از فروشندگان مختلف جهت درک بهتر از نیازمندیهای مشتریان و تامین کنندگان یعنی برای ما اینی که نیاز مشتری رو متوجه بشیم فوق العاده اهمیت داره. حساسیت نمیکنه در رابطه با نفرات فروش. ممکن تو سیستمون 4 نفر، 5 نفر از نفرات فروش استفاده کنیم ولی هدف اون چی؟ نیازمندی مشتری رو متوجه بشیم تحقیقات بازار انجام بشه. می‌دونی؟ انتظاراتشون رو متوجه بشیم و بعد اون حساس بیاد سیستم رو ببریم بالا چون کیفیت چجوری افزایش پیدا بکنه زمانی که شما حس مشتری، نیاز مشتری خیلی قوی بتونیم متوجه بشی خدمات پس از فروش انبارش قطعات مورد نیاز مورد نیاز مشتریان جهت خدمت رسانی به موقع به آنها انبارش ببین تو محصول به مشتری فروختی متوجه هستی محصول خب فروشندگاه وقتی محصول به مشتری میفروشند میان گارانتی میکنند. درسته؟ یه سال، دو سال، سه سال. و علاوه بر گارانتی، ممکنه وارانتی هم انجام بدن. وارانتی یعنی چی؟ سرویس. آه؟ آره، دیگه. آره مثلا قیمتی از این محصول خراب میشه، میاد پیش فروشنده، فروشنده پولشو میگیره، قطعه رو بهش میده. یعنی قطعات و تحویل قطعات هست. امکان پانزده قطعات هست. میشه تعویض خود محصول بشه کامل. آره. این حالت، تو این حالت وقتی ما انبارش قطعات مورد نیاز مشتری داشته باشیم یعنی تضمین وارانتی رو داریم انجام میدیم تضمین وارانتی میدونه که مدت زمان وارانتی میتونه پنج سال تا ده سال هم باشه تو میگه آقا قطعات گرده که محصولی که من به تو فروختم تا پنج سال من تضمین نیکنم اگه خواسته بیا من برای دوز برم قطعه مجالی نه، پولشو میگیره خوب. ولی آن چیزی که مهمه این قطعاتو تو جانم این سکفا درست نیست شما اگر بخوای عین محصول عوض بکنی بری میشین پولشو بده تو وارانتی پول بده شما منظورا چیه اینجوری چیکار میکنین که آقا مثلا من دیروز محصولی رو تازه زیاد خریدم برای جایی گفت تو دو ماه کلا من عوض میکنم هر خریدی مجانی... مجانی این گارانتیه حالا خودتون روی وارانتی باشه احتیاط این گارانتی این کانسپتو بهش میگن گارانتی یعنی طرف گارانتی می تضمین میکنه که آقا هر مشکلی در تو محصولی که قطتش خراب بشه خود محصول خراب بشه تا گارانتیام کی میدونی؟ خب اسکوپ داره دیگه یه موقعی شما گارانتی میکنی آقا این موبایل کامل گارانتی میکنی میگه آقا تا یک سال اصلا موبایلت خراب شد بیار من عوض میکنم اصلا موبایل عوض میکنم یا واسه میگه رو من عوض میکنم ولی وارانتی داستانش چیه وارانتی شما این خریدی میگه آقا تا 5 سال من وارانتی میکنم ایا قطعی از این محصول خراب شد میتونی بیای قطعش رو از من بخری من تضمین میکنم قطعهشو داشته باشی فدای من از فروش معمولاً گارانتی گارانتی با هم معنی نشه یعنی دوره گارانتی دوره گارانتی تمام میشه بعد دیگه آره یا یا اصلا گارانتی نداره گارانتی داره بعضی از شرکتا میگن است که من دیروز میگم اینجوری تعریف کرده میگه گارانتی تا دو سال خب قراره تا مثلا سه سال پنج سال. تا اونجوری کرده، گارانتی و بارانتی خدمات کار از فروش این سه تا آیتم رو به من میده. <تصفح> خب شاید <ده> کانسپتش رو نمیدونه. بعد میگه که تعویض <تصفح> بوده کانسپت. میشدن برایشون تمایز خواسته. گفته تا دو سال من خب میپرسید ازم میگم تا دو ماه تعویض میکنم تا پنج سال هم خدمات کامل فروش بد پس فروش بهت میدم. خب پس هم گارانتی نمیده هم گارانتی رو میده دیگه میگه تا دو سال برای تعویض میکنم تا پنج سال خدمات فاز. این تو کرده. این دستان دوستان میشه وارانتی اینه که من اینجا نوشتم وارانتی خب؟ بر پس شرکتی که به سمت تمایز یا تمایز کاله نمیره یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه ده یازده استراتژی رو داره که بتونه فعالیتاشو متمایز کنه اصول بهینه‌سازی تو هویز در جهت اپتیمایز باشه یعنی چی یعنی بهینه‌سازی در همه این موارد وقتی تمایز ایجاد می‌کنی تمام مواردی که انجام بدی مثلا ممارد. چی میتونیم مثال بزنی بهینه‌سازی یعنی زیرساختمونه وقتی مثلا سیستم شافت CRM داشته باشیم تولیتات واکیتی آره می می دیگه میشه بهینه‌سازی دیگه میشه بهینه‌سازی دیگه واسه درست دوستا پس ببینید رهبری خزینه و رهبری خزینه کالونی که من خدمتتون <تص> نداشتم میشه نگرش اوگیانوس قرمز، درسته؟ تمایز و تمایز کانونی رو که من خدمتو نوشتم بشه چی؟ نه، اه. این هم قرمز اقیانوس قرمز اگر این دوتا با هم جمع بشه، دقیق میکنی؟ یعنی تو سازمانتون هم شما سمت چپ رو اجرابه کنید؟ خب هم سمت راست رو اجرا بکنید اون وقت میتونید نگرش اقیانوس آبی رو داشته باشید که من صادقانه بگم فوق العاده آدم یعنی شما از یه طرف سیستم، مثلا ساده کردن برنامه ریزی رو باید داشته باشید از یه طرف سیستم پیش سی آر داشته باشید میدونی؟ از یه طرف سیستم ارگانیک داشته باشید از یه طرف تولیدات با کیفیت داشته باشید تلفیق این دوتا العاده سخته ولی تلفیق این دوتا میتونه یک بازاری بدینه رقابت و برای سازمان خلق کنه یک بازار. قرار کی روز یاد نہیں بندا۔ ماشاءاللہ۔ خدا واسطہ سلامتی خب در نتیجه استراتوژی عمومی رقابت پورتر خب یا به استراتژی رهبری هزینه تمایز نگاهی به کل بازار دارد در حالی که استراتژی تمرکز به بخش و بخشای از بازار توجه دارد بر اساس نگاه آقای پورتر این چهار 4 استراتژی میتونه باعث خونسا کردن تهدید رقابتی بشه تمایز رهبری هزینه تمایز یا تمرکز بر تمایز یا تمرکز بر قیمت یا رهبری هزینه قانونی و استراتژی پنجم تالیفیدی از اینها در بکنید اون استراتژی سه قرمس. خب، استراتژی اوگیانوس قرمز رقابت در بازارهای موجود متوجه این شرکتی که استراتیجش اوگیانوس قلمزه بله از میان برداشتن رقیب جزء یکی از بالاخره هر شرکت دنبال از میان برداشتن رقیبه دیگه خب، پاسخوی به نیاز و پنگازهای کنونی بازار خب تعادل بین حزینه و فارده یعنی یا درآمد رو بالا یا یا حزینه رو میاره پایین اونی که نگرش شغیان رو سه متوجه هستیم؟ هماهنگی کنی فعالیت های شرکت با یکی از استراتژی های قیمت پایین یا،, یا رو توجه کنیم یا تمایز یعنی یا میره به ضبط رهبری حزینه یا تمایز شرکتی که استراتژی شغیان رو سه ولی اوگیانوس آبی، شرکت که اوگیانوس آبی ایجاد بازارهای جدید یعنی مسلمه شرکت هایی که دنبال استراتژیشون اوگیانوس آبی چون می‌خوان درامده ببرم بالا هزینه حزینه هم بیارم پاییم دنبال بازارهای جدید هم میرن ایجاد فضای بدون رقابت شرکت و سازمانی که برنامه یعنی استراتوژیشون اوگیانوس آبی باشه دوستان؟ فضایی بدون رقابت ایجاد میکنی یعنی چی؟ شما هم درامده دارید میبنید بالا، هم از این رو میارید بایید رقابت با شرکت شما سخت میشه تو برای بله رقابت با شرکت هایی که استراتژیشون اقیانوس و فوق العاده سخته چون جفت این استراتوژی ها رو تلفیبی با هم دارن، میدونی؟ چه م... تفاوت میکنی؟ ایجاد فضایی بدون رقابت با اونی که از میان برداشتن را ببین تو اوگیان قرمز تو داری می‌جنگی با رقیب که رقیب رو از میدون به در بکنی داری می‌جنگی ولی اگر اوگیانو صحابی اصلا یعنی نگهش اوگیانو صحابی می‌گه اصلا تو اگر با این سیستم بری جلو اصلا این سیستم می‌تونه با تا بیره قمبت بکنه باید. بله ایجاد و تصاهم نیاز و بله سمت های جدید ایجاد می‌ده ب بعضی نه کپتر ما در مدیریت مالی میگیم استراتژی تلفیقی مدیریت مالی تلفیقی هم درآمد بالا یعنی به سمت درآمد بالا میره هم هزینه ها رو کنترل میکنه وحشت نقص سود شرکت ازش جدا میکنه هماهنگی کلیه فعالیت های شرکت در جهت استفاده از وضعیت های هر دو استراتژی تمایز و و رهبری هزینه یعنی هم از این هم از این یعنی استراتژی عملا تلفیقی میشه مطمئن شدید؟ ببین رفتن من بحثی که دارم در رابطه با استراتژی های تجاری دبت کنید بیزنس استراتژی استراتوژی های تجاری در هر صورت برنامه سازمان دوستان، برنامه سازمان برمیم باشه از اینجا حرکت کنه برین مثل تویان و برنامه این باشه شما نمی‌تونی بگید آقا من استراتژی مقیادوس قرمز کار بگیریم صابی ندارم و من به سمت شرکت کنم نه باید حرکت کنی به سمت اقیانوس صابی البته رسیدن به اقیانوس صابی مدينه فاضله ساین فوق العاده سخته که شما درآمد بالا خزینه بده ببر حرکت کنی به سمتش برای ماها شرکت ها که ایرانی چه خارجی اینجا هست دیگه تقیانوس قرمز بریم درمه چی باشه که که کنکم بسه هم آبی خب سوالی هست تمات پایین همون رهبری هزینه شد بله یه اسم دیگه هم وجود کاست این بابدیه رهبری دائمه رهبری پایین اول کاست رهبری هزینه نگاهم تو بازار ایران واقعا آبی الان زمینه خیلی خوبی داشته باشه چرا به خاطر اینکه خیلی ها دنبال هیکس جدید نعم نیستند ببین خیلی از این مواردی که ما اینجا گفتیم در ایران اجراش سخته یکیش بهرهوری بالا تولید اقتصادی این تو ایران خیلی سخته خیلی بیشه، اصلا نمیشه نمیشه, نمیشه. نمیشه. اصلا بگه خب خدمت شما عرض شود که استفاده از حجزها نبیشه هست خب بعضاً برای بعض شرکت رو میکنه سخت باشه استف... افضایش آموزش های از سربخش سخته خیلی سخته اجراش خرید ارزان بلی با کیفیت مثلاً لوجستیک توی را مشکل داره میدونین؟ یا مثلاً به فرض مثال کیفیت افسایش کیفیت چاته کارش از اینا گارانتی اینم بس پولاته با سخته خب تو صد نقطه هست چنده استراتژی کنی ما فکر کنم ای اول این اولی کلاسیه که ما وارد اورگانایزیشنل استراکچر تو مدیریت استراتژیک میشه نه با چرا؟ <تصفيق> چرا؟ <تصفيق> آه؟ سافر سازم ببین نرستم، فرصت نداشتنم <تصفيق> ببین، ما استسات دیگه ام بی ای و کلاس هاش در 18 ساعت برگزار میکنن خب، لذا مدیریت استراتیجیک هم 18 ساعته ما در غالب یه سی دی فشرده میویم اون مطالب کلیدی رو یه دارم اون چیزی که واقعا مورد نیاز دانش رو آموزش میدیم خب، نمیشه و تمام این درس ها به قول معروف بعد از 42 ساعت استانداردش 42 ساعته. حالا اینجا چون میره به 200 223 ساعت ما میتونیم تونیم رو واسه ساختار سازمانی هم وارد بشی. میدونی داستان این چیه ساخت که ساختار سازمانی؟ آه. چیه؟ یعنی اگر استراتژی تمایزه چه اتفاقی تو معماری سازمانت میفته؟ اگر رهبری هزینه است استراتژی <تصفح> چه اتفاقی در رابطه با معماری سازمانت میفته؟ <تصفح> ساختار سازمانت <تصفح> حالا میریم بهش